ولو شاء اللهم مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمَنَ ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتلهم ولكن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 کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه روشن که برایشان آمد با یکدیگر دیگر جنگ نمی ولی آنان با هم اختلاف کردند پس برخی از آنان ایمان آورده و برخی از آنان کفر برزیده و اگر خدا می خواست با هم جنگ نمی ولی خدا آنچه را می خواهد انجام می دهد. يا کسانی الذين ایمان انفقوا مما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه ولا ولا از آنچه به شما روزی داده انفاق کنید پیش از آن که روزی فرارست که در آن نخرید و فروش است و دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم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 وسع سع كرسيه السماوات و ولا و یعوده حفظهما هو العلی العظیم الله هیچ معبودی به حق جز او نیست زنده نگهدار و مدبر است نچورت او را فراگیرد و نخواب آنچه در آسمان ها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 بلا مرتبه أبو زرعة است. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في طام لها والله سميع عليم. و در دین هیچ اجباری نیست، به راستی که راه راست از راه انحراف روشن شده است، پس هر کس به تاقود کفر برزد و به خدا ایمان آورد، پس براستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است که را گسستن نیست، و خداون شنوای داناست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات خداوند یاور و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میبرد و کسانی که کافر شدند یاور و سرپرست آنها تاغوت است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون میبرند آنها اهل آتشند و جاویدان دران خواهند ماند الم تر الالذی حاج ابراهیم في ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی يحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراهیم فا انت ن الله ت بالشمس من المشرق فاأتی بها من المغرب فبهت الذی كفر والله لا یهدی القوم الظالمین آیا ندیدی كسیكه با ابراهیم دربارهٔ پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت بدان خاطر كه خداوند به او پادشاهی داده بود هنگامیكه ابراهیم گفت پروردگار من است که زنده می کند و می, می نمرود گفت من نیز زنده می کنم و می, می ابراهیم گفت همانا خداوند خورشید را از مشرق می آورد پس آن را از مغرب بیاور. آن کتی که کفر برزیده بود مبهود شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند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 قَالَ بَلْ لَبِثَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعْلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِذُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا یا تبین له قال اعلم ان الله على كل یا همانند آن کسی که بردهی گذشت در حالی که دیوارهای آن به روی سقف ها فرور ایخته بود او با خود گفت چگونه خداوند این را پس از مرگشان زنده می میکند پس خداوند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 ما چونین کردیم تا به تو پاسخ گوییم و هم تو را نشان برای مردم در مورد معاد قرار دهیم و اکنون به استخانهای علاق خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیبند میدهیم. سپس گوشت بران میپوشانیم. پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد گفت میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ و به یاد بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی فرمود اگر ایمان نیاوردی، ای گفت چرا ولی میخواهم که قلبم آرام بگیرد فرمود پس چهار پرنده را برگیر انگاه آنها را پیش خود قطعه قطعه کن و در هم بیامیز سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار انگاه آنها را بخان شتابان به سوی تو میآیند و بدان که خداوند توانمند و حکیم است مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل كسانكه اموال خد را در راه خدا نفا مكنند همانند دانه است که هفت خوش برویاند که در هر خوشی یک دانه باشد و خداوند برای هرکس که بخواهد چند برابر میکند و خدا گشایشگر داناست. <سؤال> الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اد لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون که <سؤال> اموال <سؤال> خود را در راه خدا انفاق کنند،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 والله غنی حلیم سخن پسندیده و گذشت بهتر از صدقی است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بینیاز و برد است. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله له رئاء النات ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله کمثل صفوان علی تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا يقدرون على شيء مما کسبو والله لا يهدل قوم الكافرين ای کسانی که ایمان آبرده اید صدقه خود را با منت و آزار باطل مکنید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 اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضحفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 به آنچه بیناست آیا ود احدکم ان تکون له جنته من و واعناب تجري من تحتها الانهر تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد اي ای كسانيك ایمان آورده ای از چیزهای پاکیزه ای که به دست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 ؤتل حكممة ن ش وماقتل الحكممة فقد اووت خيرا كثيررا وما يزك إنااء الألب خداوند به هر کس که بخواهد حکمت و دانش میدهد و به هرکس حکمت داده شود بی بشكل خیر فراوانی داده شده است.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 یا هر نظری که ببندید قطعا خداوند آن را می و برای ستمگران هیچ یاوری نیست این تبدو صدقات فن عماهی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم و عنكم من سيئاتكم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 پاداش آن به طور کامل و تمام به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْصِرُوا فِي تَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم بثيما لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدقات شما برای توهی است که در راه خدا محصور و بازداشته شدهاند. اند و ننی توانند برای تأمین حضینی زندگی در زمین سفر کنند از شدت خیشتنداری افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند. آنها را از چهره هایشان می شناسی با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و آنچه از مال انفاق می کنید. قطعا خدا به آن آگاه است الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم, فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزد آنها نزده پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست، و نه ایشان اندوهگی می شوند الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَعَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ و من عادف که اصحاب النار هم فيها خالدون کسانی که ربا میخورند خورند روزی قیامت از گور برنمی خیزند مگر مانند برخواستن کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده این بدان سبب است که آنان گفتند همان آداد و ستد هم مثل رباست و در حالی که خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. پس همانا هرکس کس که از جانب پروردگارش پندی به او رسد، آنگاه از رباخاری باز ایستاد، آنچه گذشته از آن اوست، و کارش به خدا واگذار می شود، و کسی که به ربا باز گردد، آنان اهل آتشند و در آن جاویدان خواهند بود، یمحق الله الربا ویربی الصدقات والله لا یحب كل كفار تیم خداوند ربا را نابود میکند و صدقات را افزایش میدهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهكاری را دوست نمی دارد.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 از را ترا اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین میشوند یا <تصفيق> <تصفيق> ای آنها آمنوا ایمان تقوا الله و ما باقی من الربا ان کنتم مؤمنین ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن استید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُونِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تظلمون پس اگر چنین نکردید یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان از آن شماست نستم می و و نبر شما ستم وارد می شود و این کاندو عسرت فنظرتون الى میسره و ان تصدقو خیر لكم این کنتم تعلمون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 اذا تداینتم بدين إلى اجل مسمّا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 ولا تفأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقرم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه به همدیگر تا مدت معینی می دادید آن را بنویسید و باید ای آن را دادگران بین شما بنویسد و هیچ ای نباید از نوشتن همان گونه که خدا به او آموزش داده خودداری کند پس باید بنویسد و با این کسی که حق بر ذمه اوست باید املا کند و باید از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و از آن چیزی نکاهد پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست صفیح یا ناتوان باشد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 باید امانت خود را باست دهد و باید از الله که پروردگار اوست بترسد و شهادت را کتمان نکنید و هر آن را کتمان کند بیشک قلبش گناهکار است و خدا به آنچه می داناست لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ و فِي الْأَرْضِ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 وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پیامبر به آنکه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیانبرانش ایمان اند و گفتند میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم پربردگارا آمردش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی توست لا یکلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت و علیها مکتسبت ربنا لا تؤاخدنا اینتینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا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 مِن قبل هدل للناس و انزل الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید وَاللَّهُ عَزِیزٌ زُنْتِقَامٌ پیش از آن برای هدایت مردم نازل کرد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 بر خدا پوشیده نمیماند هو او الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحكيم. او کسی است که شما را در رحمها هرگونه هر گونه که بخواهد صورت گری میکند هیچ معبودی جز او نیست که توانمند و حکیم است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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتمة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراثخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا اول الالب او كسيست که کتاب قرآن را بر نازل کرد بخشی از آن آیات محکم است که آنها اساس کتاب است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 قد خداوند بعدي خود را خلاف نمیکند ان الذين <تصفيق> كفروا لن تغني <تصفيق> عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار براستی کسانی که کافر شدند، اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب خدا را از آنان باز ندارد و آنان خود هیزم آتش دوزخ هستند گدعب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم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 قل للذین كفروا تغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد به کسانی که کافر شدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و سپس در قیامت به سوی جهنم محشور میشوید و چه بد جایگاهی است قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير مِنَ من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام ذَلِكَ ذلك متاع الحياة الدنيا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 سرانجام نیک نزد خداست قل اعونبئاکم بخير من ذلك للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها خالدین فیها و ازواج ورضوان من الله والله الله بصیر بالعباد بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقبا پیشه کرده اند در نزد پروردگارشان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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا عذاب النار. کسانی که كسانيكي میگویند پروردگارا به راستی ما ایمان آورده این پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگهدار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 در حالی که خداوند در جهان هستی قیام به عدالت دارد، معبودی به حق جز او نیست که توانمند و حکیم است. این الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بينهم،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 به آیات خدا کفر برزد پس بداند که خداوند سریع الحساب است فَإِنْ حَجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْ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 ألمطائلل الذي نَ أوتونَ صبًا مِ الكتابدعون إلى كتاب الله يحكم ب مُمثُيتَولا فريقُم مِنهُ وَ مبون آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب آسمانی داده شداند به سوی کتاب خدا دعوت میشوند؟ تا در میان آنها داوری و حکم کند پس گروهی از آنان روی میگردانند در حالی که اعتراض دارند ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 فکیف اذا جمعناهم یوم لا ريب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون پس چگونه خواهد بود حالشان هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست گرد آوریم و به هر کس پاداش آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود لا بأنهاستم نخاهت شد. قل لا هم مالك الملك تأتي الملك من تشاء وتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بگو بار الها ای دارنده پادشاهی به هر کس که بخاهی پادشاهی میبخشی و از هر کس بخواهی پادشاهی را میگیری، و هر کس را بخواهی عزت میدهی، و هر که بخواهی خار میکنی، همه خوبی ها به دست توست، بیشک تو بر هر چیز توانایی تولی لیل فی النهار و تولی نهار فی اللیل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 لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُونَ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 به سوی خداست قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه و يعلمه الله و يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير بگو اگر آن چه در سینه‌های شماست پنهان دارید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 ص تود لو أن بها وَبهُ أمدمبعدا وَحذذركم الله ننفسن والله رؤوف بالعباد روزی که هرکس آنچه را از خیر ویکی انجام داده و آنچه از بدی مرتب شده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 قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفعن لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بگو اگر خدا را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان بیامرزد و خداوند آمرزندی مهربان است. قل اطیع الله و الرسول فإن تولو فإن الله لا يحب الكافرين بگو خدا و پیام برای او را اطاعت کنید پس اگر پشت کردند قطعا خداوند کافران را دوست نمی دارد این الله صفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمی براستی خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خدابند شنوای داناست اذ قالت امرأت عمران رب اینی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی من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 اینی وضعتها انفا والله اعلم بما وضعت قالت رب انی وضعتها انفا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر کالانفا مریم و اینی اعیدها من الشیطان الرجیم. پس هنگامی که او را بزاد گفت پروردگارا من او را دختر زاده ام و خدا به آنچه او زاییده داناتر بود و پسر همانند دختر نیست و من او را مریم نام گذاردم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 وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنْ الله يرزق من يشاء حساب. انگاه پروردگارش او را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته ای او را رویانید و کفالت او را به زکریا سپرد هرگاه زکریا وارد مهراب او می شد. نزد او غذا و رزقی یافت زکریا می گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده است مریم می گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بیشمار روزی می دهد هنالک <تصفح> دعا زکریه ربه قال رب هبلی من لدن که اینک آنجا بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا از طرف خود فرزند ای به من عطا کن به درستی تو شنمنده دعایی فنابته الملائکته و هو وَالِي فِالْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاءٍ صَادِقَةٍ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدٍ وَحَصُورٍ وَسَيِّدٍ وَحَصُورٍ وَنَبِيٍّ مِنَ الصَّالِحِينَ پس در حالی که او ایستاده در مهراب نماز می‌خواند، فرشتگان او را ندا کردند که خداوند ترابی احیا بشارت می‌دهد و او تصدیق کننده کلمه خداست و سرور و و پیامبری از سالحان است.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 بدین دینگونه خداوند هرچه چه بخواهد انجام میدهد. قال رب اجعل لي آیه قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رب ذا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي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 واذ قالت الملائكة یا مریم ان الله اصطفاك و واصطفاك علی نساء العالمین و به یاد آورید هنگامی را كه فرشتگان گفتند، ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است يا مریم قولي لربك واسجدی واركعي مع الراكعين ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجد کن و با رکوع کنندگان رکوع کن ذالک من امد الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم ایز یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم ایز یختصمون ای پیامبر این از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را می تا کدام یک سرپرستی مریم را به احتگیرد نزد آنان نبودی بنیز وقتی که با یک دیگر کشمکشم کردند نزدشان نبودی. از قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح ابن مریم و وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين و به یاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی سبن مریم است بشارت میدهد، در حالی که او در دنیا و آخرت آب و از مقربان درگاه الهی است. ويكلم الناس في المهد و ومن و ودر گهواره و در حالت کهولت با مردم سخن میگوید و از شایستگان است قالت رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله یخلق ما یشاء إذا قضا امرا <متظم> فانما یقول له كن فیكون مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که بشری به من دست نزده است فرشته گفت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 وابرئ الاكمها والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين واوراب عنوان سوی بنی اسرائیل میترست که او به آنان میگوید من از سوی پروردگارتان برایتان نشانه ای آوردم من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده میسازم آنگاه در آن میدمم پس به فرمان خدا پرنده ای می شود و به فرمان خدا کور مادر زاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی می بخشم و مردگان را زنده می کنم و از آنچه میخورید و در خانه هایتان زخیر می کنید به شما خبر میدهم مسلما در اینها نشانهای برای شماست اگر ایمان داشته باشید. و مصدقا لما بین یدی من التورات ولی احل لکم بعضا لذی حرم علیکم.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 و مرا اطاعت کنید. ان الله ربي و ربكم فعبدو. اینا مستقیم ربي و که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است راه راست. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أُنصِرُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 آنچه در آن اختلاف می‌کردید در میان شما داوری می‌کنم فاما اللذین کفروا فاعذبهم عذابا شديدا فی الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین اما کسانی که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را به عذابی سخت عذاب می کنم و برای آنها یاورانی نیست و اما الذین آمنوا آمنو و عمل الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین و اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند پس خداوند مزدشان را به طور کامل به آنان خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد نتلوه من ای محمد اینها که بر تو میخوانیم از آیات و نشانه های خداوند و قرآن حکمت آمیز است. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون همانا مثل عیسی نزد خدا همچون مثل خلقت آدم است که او را از خاک آفرید پس به او فرمود باش پس بیدرنگ موجود شد الحق من ربك فلا تكن من المنتريين آنچه درباره عیسی بیان کردیم حق از جانب پروردگار توست پس هرگز از تردید کنندگان مباش فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا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 فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پس اگر روی گردانند، بدان که خدا به حال طبخکاران آگاه است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 پس اگر از این دعوت روی گرداندند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم یا اهل الكتاب لم حاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ای اهل کتاب چرا در باری ابراهیم مجادله و ستیز میکنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است آیا اندیشه نمی کنید اا انتم ها اولئک حاججتم بهی علم سلمت حاجون فیما ليس لکن بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون هان شما اهل کتاب کسانی هستید که درباری آنچه نسبت به آن آگاهی و علم داشتید مهاجه و ستیز کردید پس چرا در مورد چیزی که بدان علم ندارید مهاجه و تیز میکنید و خدا میداند و شما نمیدانید. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بود و نه نسرانی بلکه یک تا پرستی مسلمان بود و هرگز از مشکان نبود این اولن ناتب بابراهیم للذین اتبعوه و هادن نبی والذین آمنو والله ولی المؤمنی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 و ما يشعرون. گروهی از اهل کتاب آرزو می کردند و دوست داشتند که شما را گمراه می کردند در حالی که جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند و نمی یا اهل کتاب لم تکفرون بی آیات الله و انتم تشهدون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 ای اهل کتاب چرا حق را به باطل می آمیزید به حق را کتمان می کنید در حالی که خودتان میدانید وقال الطائفتم من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النهار و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 إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم و جز به کسی که از دین شما پیروی میکند ایمان نیاورید بگو همانا هدایت هدایت خداست گفتند مبادا به کسی همانند آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما مهاج و ستیز کنند بگو راستی فضل و برتری به دست خداست آن را به هر کس که بخواهد میدهد و خداوند گشایشگر داناست یختفق برحمتهی من يشاء والله ذو الفضل العظیم هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوص میگرداند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگ است. و من اهل الكتاب من انت امنه بقنطاری یؤدهی الیک و من هم من انت امنه بدینار لا یؤدهی. ل ما دمت عله قائما ذلك بأنهم قالوا في ويقولون على الله وهم كتاب او را بر مال امین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 من اوفا بعهده و فإن الله يحب المتقين. هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نماید پس بی گمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم عذاب علیم. همانا کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند آنها بهره در آخرت نخواهند داشت خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمی نمیگوید و به آنان نمینگرد و آنها را از گناه پاک نمیسازد و عذاب دردناکی برای آنهاست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 قال ا اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين. و تبياد بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمت دادم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 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس هر کس که بعد از این پیمان روی گرداند آنانند که فاسق و نافرمانند أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل ها قومه يا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم و له مسلمون بگو بخداوند به نازل شده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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينان والله لا يهدي القوم الظالمين چگونه خداوند قومی را هدایت قوم را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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون که پس از ایمان خود کافر شدند